شرح این عملیات غیرممکن رو که فقط با اتکاب قدرت و ایمان سپاه انجام شد خیلی همچین با آب و تاب تعریف کردند که بخش‌های از اون رو بشنیم. اونا واقعاً گم شده بودن میوه‌های آمریکایی گم شده بودند. آمریکایی‌ها بسیار دست باچه عصبی شتابناک، حیجانی، خارج از کنترل. به تعبیر خودشون، out of control. وارد صحنه شدند. آوت آو کنترول رو کیف کرده این خدایی سردار ماشالله زبان انگلیسی کاملا مسلط و این ولول خلاص آمریکایی امریکایی ها مثل سربازه عراقی تو این فیلم های دفاع مقدس بود که تلویزیون نشون میدادا اونجوری بودن نریخته بودن به هم حالا بچه های سپاه چه جوری بودن؟ اینجوری بودن بچه های ما بسیار آرام و با قلب های مطمئن در انتظار حوادثی بودن که ممکن بود اتفاق بیانده ماشالله به سپا ما خلاصه آقا سردار کل این ماجره رو با چنان تعلیقه ها و پیچ و تعریف کرد چنان رو زیاد کرد خدایی ما فکر کردیم آمریکا با تمام قوا عمله نظامی کرده بوده به ایران بعد بچه های سپا با دو تا قایق مطوری مثلا رفتن کلن تومار ارتش آمریکا رو در هم پیچیدن و برگشتن بابا سردار جان. دو تا قایق نظامی کوچیک بوده راگم کردن حالا خراب شده هر چی شده اشتباهی مادن تو آب‌های ایران بر بچه‌ها بم رفتن سر وقتشون دیگه چرا بزرگ می‌کنی قضیه رو ایه. شاید من بخوام بگم برای اولین بار از بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز که فنگداران دریایی آمریکا در معرض یک چنین ماجرایی قرار گیرند عظمت نظام ما وای وای در این استثناءات روشن میشه برگ‌هایی از تاریخ که کمتر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 به خدا اگه ما بخیل باشیم شنوندگان عزیز توجه فرمایید شنوندگان عزیز توجه فرمایید دلاور مردان جانبركف نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی